هاروت و ماروت سوال بعدی سوال, سوال ها باز انتقاق جواب بده هاروت و ماروت خلاصه میگم هاروت و ماروت در اصل دو تا فرشته در سرزمین بابل فرستاده شدند برای تعلیم دادن و آگاه کردن مردم سرزمین بایبل بابل بایبل نه بایبل یعنی انجیل بابل شهر بابل در عراق است بابل یک شهری بود که مرکز جادو تمام جادوگرهای خطرناک و ساهران بزرگ در بابل بودند علم سحر و جادو اینقدر در بابل زیاد بود و اینقدر مردم بر علم روی جادوگر و ساحر اعتماد داشتند بر هیچ کسی دیگر اون اعتمادو نداشتن جادوگر و شاهد انسانهای بزرگی بودن چه کار خطرناک میکردن. و این جادو اینقدر زیاد بود در خود شهر بابل اینقدر زیاد بود که تشخیص معجزه نبی از جادو مشکل بود اگر نبی نبی فلستانی میشو اگر نبی اینجا معجزه ظاهر میکرد، مردم حالا تشخیص نمیدادم. این در جادو میکوری یا یه موجزه هست برای فهمیدن بین جادو و موجزه حالا یه دشواری بزرگی پیش آمده بود الله رب العالمین حاروت و معروض و تا و فرستاد تا مردم را اصول سحر و جادو تعلیم بدهند این جنت اونها سحر و جادو بکنند. اونها را فرستاد تا اصول سحر و جادو را بر اونها تعلیم بدن تا مردم بتونن تشخیص بده این جادو هست و این سحره تا از اون گناه بیرون بیآیند و بعد وقتی جادو سه تشخیص داده بشه خود به خود مشخص میشه این هست معجزه و حقانیت پیغمبر مشخص میشه اگر بین معجزه و جادو فرق نواشه مشخص نمیشود اما قبل از اینکه اینها تعلیم اینجور سحر میکنن حالا خطر بود که حالا طالبیده خدوار استفاده می کردم و جادو می کردم فرشته ها می گفتند که مردم نگاه کنیم ما به خاطری و شما رو جادو تعلیم بدیم ما داریم دشما می گی این اصولش هستن اینجور جادو می کنن تا شما خود را نجات بدهید و ایمان برای شما تصوید بشه موجزه ها رو درک بکنید اما خیلی ها دوباره از تعلیمات فرشته ها استفاده می کرد جادو می کردن این گناهش بر خود فرشته نمی آید. چون فرشته آمد تا او را نجات بده اگر کسی از اون اصول قلعه استفاده کرده مقصر خودش مالا داروها حالا پزشکی دارو میده بعدی که بیا خودش موتاد بکنه همیشه استفاده بکنه و نه بر پزشک نیست خودش موتاد خودش مناحکار میشه یک کسی میاد اصول فرسفه یونار را نشان میده بعدها کسی بیگه بر علی اسلام استفاده بکنه خودش مقصر هست پس خود حاروت و ماروت این بودن. تعلیم دادن بعد از اونها رفتن رو برگشتن دو رفته این که هاروت ماروت در چای قابل باشند اینجوری نیست یا این که دوباره خانم زهره آمد تو حدیثو هست که زهره آمد به من جونیشو میپری تعلیم بده اینها عاشق زهره شدن زهره هم خانم خیلی زیبا بود زهره و زمانی من باشد دوست میشم تمکین میدم که همون ور را دعایی که میخونی شما پرواز میکنی به من یاد بدی من هم شما رو تمکین میدم اینها ها دعا بهش تعلیم دادم و من دعا خون پرواز کرده روی خود به سلام سیاره زهره نشست و زهره این حدیث درست نیست این داستان داستان جعلی هست که داستان وجود نداره بخاطرین گفتم که خیلی شاید شنیده باشه جای بخونیم این داستان ها غلطا حار و تمارون عاشق کسی نبودن فقط آمدن تا مردم رو از صحر و جادو نجات بدهند